داستان شاهزاده خوشبخت مجسمه شاهزاده خوشبخت بالای ستونی بلند سرپایست داده بود تمام شهر را زیر نظر داشت مجسمه زیر آفتاب برق میزد. چون روکشی از ورقه طلا داشت یه یاقوت روی دسته شمشیرش چسبونده بود دو تا کبود درخشان هم به جای چشماش کار گذاشته بودند. معمولاً وقتی نگاه مردم شهر به شاهزاده خوشبخت می‌افتاد، آهی میکشیدن. زیبایی اونو تحسین میکردن و به لبخند رضایتمندانش قبطه میخوردن شبی پر از توی کوچولوی پرپرزنون از آسمون فرود اومد. وسط پاهای تلایی شاهزاده نشست. مدتی از پاییز میگذشت. وزش بادهای سرد آغاز شده بود. دوستان پرستو چند هفته زودتر به سمت سرزمین های گرمتر جنوب به راه افتاده بودن. پرستو با آنها نرفته بود چون عاشق یک نی شده بود که کنار رودخانه رویده بود. پرستو دلش نمی اومد رو ترک کنه ولی چند روز بعد وضعیت بادها شدیدتر و سوز هوا بیشتر شد پرستو که متوجه شده بود اگه بازم اونجا بمونه حتما جونش رو از دست میده آخرش تصمیم گرفت سفرش رو آغاز کنه خیلی به نی التماس کرده بود همراش بیاد اما نه فقط سرش رو تکون داده بود بالاخره پرستو مجبور شده بود تنها و با دلی اندوهگین از اونجا بره پرستوی کوچولو با خودش گفت فرد و صبح زود را میفتم و خودم رو به دوستان میرسونم بعد سرش رو زیر بالش فرو برد و خودش رو آماده کرد که بعد از سفری دور و دراز کمی استراحت کنه اما دو تازه داشت توی رویاهای خودش فرو میرفت که یه دید دونه های درشت بارون داره به سر و روش می باره. پرستو با تعجب به آسمون صاف شب نگاهی انداخت و بعد متوجه شد مجسمه بالای سرش داره گریه میکنه پرستو کچولو پرسید تو کی هستی چرا داری گریه میکنی چشمای مجسمه زیر نور ماه مثل الماس برقی زد و جواب داد مردم اسمم رو گذاشتن شاهزاده خوشبخت ولی راستش رو بخوای من خیلیم غمگینم اونا من رو روی چنین سرکوی بلندی گذاشتن تا تمام شهر رو زیر نظر داشته باشم و بتونم همه زشتی و بدبختی های اون رو ببینم. مثلا امشب زن بیچاره ای رو میبینم که توی خونه ای در کنار شهر نشسته. این زن از گرسنگی لاغر شده و از خستگی رنگ و رویی به صورتش نداره. اما هنوز هم مشغول کار و داره شنل یکی از ندیمه های افتخاری ملکه رو گلدوزی میکنه پسر کوچولوی اون که مریضه گوشه ای از اتاق توی تختش افتاده و به پرتقال گرفته اما زن پولی نداره که برای اون چیزی بخره. به خاطر همین تنها چیزی که می به اون بده آب و بس. شاهزاده خوشبخت هایی کشید و ادامه داد پرستو کچولو میای میا یاقوت روی دسته شمشیرم رو بکنی و اون رو برای این زن ببری اینجوری اون میتونه یاقوت رو بفروشه و پولی به دست بیاره پاهای من به این پایه میخ شدن و نمیتونم از جام تکم بخورم شاهزاده خوشبخت چنان نگاه غمگینی به پرستو انداخت که پرستو قبول کرد این کار رو براش انجام بده. اون یاغوت رو از دسته شمشیر شاهزاده کند، اون رو به منقار گرفت و از فراز بام خونه ها به پرواز در من. وقتی پشت پنجره خونه اون زن فقیر رسید دید زن با این که از بیخابی جونش داره در میره اما باز هم سخت مشغول کاره. پرستو تو رو کنار انگشتانه زن گذاشت. بعد بی سر و صدا دور تخت پسرک مریض که از تب می چرخی زد و بال, بال زد. خواست اونو کمی خونک کنه. وقتی پرستو پیش مجسمه خوشبخت برگشت، ماجره رو برای اون تعریف کرد و گفت عجیبه با اینکه هوا اینقدر سرده بازم از درون احساس گرمو میکنم. پرستوی داشت به خواب میرفت. شاهزاده خوشبخت گفت به خاطر این چنین احساسی داری که کار خوبی انجام دادی. روز بعد پرستو بر فراز شهر به پرواز در اومد، تا با همه چیز رو همه کس خدافزی کنه. فریاد زد. من امشب از اینجا میرم تا خودم رو به مصر برسونم. اما وقتی شب فرا رسید و اون برای خدافزی پیش شاهصاده خوشبخت برگشت دید اون دوباره داره گریه میکنه. شاهزاده گفت. اون طرف شهری اتاقه که زیر شیرونی هست. دارم میبینم توی اون اتاق مردی جوان روی یه میز خم شده. میخواد نمایش نامه ای رو که داره برای مدیر تئاتر مینویسه تموم کنه. اما اونقدر یخ کرده که نمیتونه چیزی بنویسه. آتیش اجاقش خاموش شده و پولی برای خرید هیزم یا شام نداره. دوباره چند قطر عشق درخشان از گوشه چشم شاهزاده خوشبخت روی بینیش لقصید و از اونجا روی سر پرستو افتاد. مجسمه ادامه داد. پرستو کچولو یه شب دیگه پیش من میمونی؟ پیک من میشی؟ بیا یکی از یاقوتای چشمم رو در بیا رو برای اون ببر. پرستو گفت. شاهزاده عزیز من چشمت رو در نمیارم اشک از چشمای خودش هم سرازیر شد شاهزاده خوشبخت التماسکنان گفت پرستو کچولو خواهش میکنم این کارو بکن شاهزاده چنان بیافه‌ی غمگینی گرفته بود که پرستو دلش سوخت یکی از چشمای مجسمه رو با منقارش در آورد و اون را برداشت تا برای نویسنده اتاقک زیر شیروانی ببرد. وقتی که پرستو کوچولو داشت به طرف لونش کنارش شاساده خوشبخت برمی گشت، خوشحال بود. چون هوایی که زیر بالهاش عبور می کرد، دیگه واقعا خیلی سرد شده بود. روز بعد پرستو به طرف بندرگاه پرواز کرد و کشتی‌های بزرگی رو دید که بادبان میکشن و به طرف سرزمینهایی میرند که نسیمی گرم و روزهایی طولانی دارند. اون به هر کسی که رسید این آواز رو خون. من هم امشب از اینجا می‌روم. پرست پرستو برای خدافیزی پیش شاهزاده خوشبخت برگشت. شاهزاده گفت: تو میدونی که اون پایین دختر کبریت فروشی هست که تموم کبریتاش توی جوب آب افتاده با و خراب شده. حالا داره گریه میکنه چون دیگه نمیتونه پولی در بیاره. اگرم دست خالی به خونه برگرده پدرش کتکش میزنه. شاه ساده لبخندی زد و ادامه داد. پرستو کچولو. بیا اون یکی چشمم رو هم در بیار و برای اون دختر کبریت فروش ببر تا خوشحالش کنی. پرستو فریاد زد. ولی اون وقت خودت کور میشی. پرستو کوچولو خواهش میکنم این کارو بکن. بعد هم چنان قیابی غمگینی به خودش گرفت که پرستو دلش سوخت و کاری که اون خواسته بود انجام داد. وقتی پرستو دوباره پیش شاهزاده خوشبخت برگشت گفت حالا که دیگه نمیتونی جایی رو ببینی من برای همیشه پیشت میمونم. شاهزاده خوشبخت گفت ولی پرستو کوچولو دوست داد توی ساحل گرم رود نیل منتظرتن. پرستو جواب داد من برای همیشه پیشت میمونم تا چشمای تو باشم. بعد هم بین پاهای مجسمه خوابید. روز بعد وقتی پرستو بعد از گشتی کوتاه بر فراز شهر پیش شاهزده خوشب خوشبخت برگشت براش تعریف کرد که چه چیزایی دیده؟ چندجا دیدم که آدمهای پولدار توی خونه هاشون جشن با شوروهوه در حالی که، مردم گدا پشت در خونه هاشون دراز کشیده بودن آدم های پیر زیادی رو دیدم که تموم روز رو تک و تنها توی سرما نشسته بودن بچه های رو دیدم که جلوی زورگوها استاده بودن و میلرزیدن دردسرت سر نهدم رنجا و بربختی های زیادی دیدم شاهزاده گو پرستو کچولو بیا و با منگارت روکش طلام رو بکن و اون رو برای مردم فقیر شهرم ببر. پرستو آه عمیقی کشید. اما کاری که شاهزاده به اون گفته بود انجام داد. شاهزاده خوشبخت دیگه کاملا لخت شده و به رنگ خاکستری در اومده بود. وقتی پرنده وفادار برای آخرین بار پیش اون برگشت برفی شروع به باریدن کرد. خیابونها پشت پرده ای از مه فرو رفته بودند. بندیل مثل خورده شیشه از لبه بام ها آویزون شده بودند. پرست و کوچولو بین پاهای شاهزاده خوشبخت میلرزید. سعی می کرد با بال زدن خودش رو گرم کنه اما فهمید مرگش نزدیکه برای همین، با استفاده از آخرین ذره توانش روی شونه مجسمه پرید و فریاد زد. خدا حافظ شاهزاده خوشبخت. دیگه هیچ وقت نمی بینمه. شاهزاده گفت. خیلی خوشحالم که عاقبت داری به جایی میری که آفتابش بالهات رو گرم میکنه. پرستو زیر لب گفت. من به مصر نمیرم. دارم میمیرم، بعد هم لبهای شاهزاده خوشبخت رو بوسید و جسد بیجانش زیر پای اون افتاد در همون لحظه، صدای ترک بلندی از درون شاهزاده خوشبخت به گوش رسید صدا اونقدر بلند بود که شهردار که همون موقع داشت از زیر مجسمه رد می شود، صداش رو شنید. اون بعد از ماه سرش رو بالا آورد تا نگاهی به مجسمه بندز. اما با تعجب گفت خدای من. این بلا کهی سر شاهزاده خوشبخت اومده؟ بهتر اون رو با یه چیز دیگه عوض کنیم؟ روز بعد کارگرها شاهزاده خوشبخت رو از بالای ستونش پایین کشیدن و اون رو توی یک کوره انداختن و جسد پرنده مرده هم از اونجا برداشتن. بعد به جای اون مجسمه ای از شهردار بالای ستون نسب کردند. اما شاهصاده خوشبخت متوجه هیچ کدوم از این چیزا نشد. چون قلبش شکسته بود. وقتی کارگرها در کوره رو باز کردن به چشم خودشان، تیکه های قلب بی حرکت اون رو دیدن. چون قلب اون زب نشده بود. اونها تیکه های قلب مجسمه رو توی همون زبال دنیا انداختن که جسد پرست و کچولو رو انداخته بودن. زمانی هم که خدا از فرشتههاش خواست دو تا از با ارزش ترین چیزهای شهر رو براش بیارن، فرشته ها قلب شاهزاده خوشبخت و جسد پرست و رو با خودشون به آسمون ها بردن. سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها. از غولها و کتوله ها از جادوگر